بسیدیم به فراز اشهدو انم محمد رسول الله شینو خوب میگیم هرون خوب میگیم همزرم خوب میگیم اشهدو هارون خوب بگیم محمدن بعضا رو تو محمد فتحشون میکشم میگه محمد اینکه سلوات میخوام بگیرن خود نام زیبای پیامبر سلوات میاره دیگه شما نمیخواد بکشی محمدن رسول الله این نونه در محمدن نونش در ره اتقام میشه محم رسول الله رسول الله نشه یه بار بخونیم اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله